برلین غربی، آلمان غربی، یک فوریه 1964. زودتر از موعد مقرر به کافه رسید. همیشه عادت داشت، زودتر از وقتی که برای ملاقات تعین شده بود، سر قرار برود. مکان را بررسی کرد و میزی را که در گوشه دنج قرار داشت، انتخاب کرد و نشست. منتظر مردی بود که اصرار داشت با او ملاقات کند. اصلا آن مرد را نمی شناخت. اگر به خاطر دوست مشترکشان نبود. هرگز زیر بار این ملاقات نمیرفت. رفت به ویژه اینکه این گفتگو خاطراتی را برایش زنده میکرد کرد که او با تمام وجود سعی می کرد آنها را فراموش کند آن مرد تاکید داشت موضوع صحبتشان تنها به شخص او مربوط نمی شود و برای مردمی کار می کند که دیگر زنده نیستند و اینکه اخلاق حکم می کند که با او همکاری کند. همه ای اینها باعث شده بود امروز هرچند با اکراه به محل قرار ملاقاتشان بیاید روی صورتش چین و چروکهایی دیده میشد شدت سختی هایی که بر او گذشته بود زودتر از سنش گرد پیری را بر چهرهرش نشانده بود اما موهای مشکیش تسلیم پیری زودرس نشده و هنوز کاملا سیاه بود صورتش مخلوطی از چهره اروپایی مادر و قیافه شرقی پدرش بود و در تقسیم علائم به طور دقیق ادالت رعایت شده بود. پیش خدمت یک فنجان قهوه برایش آورد و او غرق در خاطرات گذشته شروع به نوشیدن آن کرد. همیشه سعی داشت خاطرات تلخش را در آن دهلیزهای دورافتاده جا بگذارد. آنچه بر او روا داشتند هرگز نمیبخشید. بخشید. دوری از خانواده را هرگز و هرگز فراموش نمیکرد. هیچ دلیلی برای این اتفاقات تلخ نمی هویتش. حوییتی که با او متولد شده بود. اما به خودش داد در حد توانش آن احساسات بد را کنار بگذارد تا بتواند به زندگی ادامه دهد. میدانست دانست انتقام ندارد. تمایلی هم برای این کار نداشت. دو دستی به نعمت بزرگ فراموشی چنگ زده بود تا او را از غرق شدن در خاطرات زندگی پررنج در اردوگاه آشویتس نجات دهد. صدای مردانه رشته افکارش را قطع کرد. راشل بله. من شیمون بایتسمن هستم. ازت ممنونم که درخواست ملاقاتم را قبول کردی. مرد شروع به صحبت کرد و درباره کارها و فعالیتهایش توضیح داد. از جستجو و تعقیب نازیهایی که در جریان هولوکاست دست داشتند و تلاشهایش برای یافتن و آماده اسناد و مدارکی سخن گفت که می توانست آنها را محکوم کند و به دست ادالت بسپارد. همچنین با اغراق درباره امکان تحت تعقیب قرار گرفتن خودش و همکارانش پرچانگی کرد و سپس ادعا کرد حتی اگر یکی از این سفرهای تعقیب و گریزشان بی‌بازگشت باشد حداقل میتواند در قبرش احساس آرامش کند و در آخر توضیح داد وظیفه او و هر کسی که میتواند به او کمک کند این است که نگذارند این مجرمان فرار کند. می گفت این یک وظیفه انسانی و خدمت به بشریت است و آنها نباید از زیر بار آن شانه خالی کنند. زیرا تنها با مجازات این مجرمان است که می تواند به نسلهای آینده کمک کنند و اجازه ندهند فرزندانشان گرفتار همان فجایع زشت و هولناکی شوند که آنها را در کام خود فرو برده بود. خواستم ببینم تا ازت درباره همسایتون بپرسم. لیلیون اشمیت رو یادت هست؟ بله اون دقیقا روبروی خونه ما زندگی کرد. طبق اطلاعاتی که ما داریم اون یکی از همدستان آیشمن بوده. با شنیدن نام آیشمان بر خود لرزید. میدانست به دستور آیشمان خانواده او و هزاران خانواده دیگر را به آشویتز فرستادند. پرونده‌ای که من جمع‌آوری کردم واقعاً پرونده پروپیمونیه. من مدارک زیادی دارم. که نشون میده لیلیان یکی از اعضای گروه آیشمن بود. مجموعه ای که کارشون دستگیری یهودیان و فرستادن آنها به اردوگاه های مرد بود. راشل حس می کرد این مرد میخواهد او را به آن مکان نفرت انگیز برگرداند. ویسمن لحظه سکوت کرد راشل با خود فکر کرد دیگر نمیتواند حرف‌های او را تا آخر بشنود. مرد ادامه داد: این پرونده فقط یه چیز کم داره تا یک پرونده کامل و بینقص بشه، شهادت یک شاهد، خانه تاریک بود. فقط یک چراغ کم نور روشن کرده بودم و در کناپهی که نزدیک در قرار داشت فرو رفتم. نامهی که چند روز قبل دریافت کرده بودم در دست داشتم. دوباره خواندمش. در تک تک کلماتش دقیق شدم. حرف به حرف آن را حفظ کرده بودم. سرنوشت پی در پی و با بیرحمی سیلیاش را بر من می نواخت و من دیگر توان مقاومت نداشتم. واقعا نمی تحمل کدای... کدام یک برایم سختتر است. ناپدید شدن هیلدا، اعدام آیشمن، تنهاییم بعد از فوت پدر و مادر یا این اتفاق آخری یک نفر مستقیما مرا تهدید کرده بود. تا به حال با ترسی شدیدتر از این مواجه نشده بودم. توانستم وحشت ناشی از آن را تحمل کنم. بلایی بی سابقه بود. روزی که وطنم در مقابل دشمنان سر فرود آورد، نو داشت نابودم میکرد. من فکر میکردم بر آن خاطرات غلبه کردم. دو روز قبل بود که به مشروب فروشی باغ سبز رفتم تا به دنبال او بگردم آنقدر خاطرات زیبا از این مکان داشتم که پیوند عمیقی میان خودم و آن حس می کردم. اینجا در گذشته پاتوق ما بود در روزهای عظمت آلمان بزرگ دوستان وطن پرست من در اینجا دور هم جمع شدند. داخل شدم صدای بلند آن خنده های گرم و شیرین در گوشم تنین انداخت آن روزها در اینجا با کسانی شراب نوشیدم. که مثل خودم رویای رهبری دنیا را در سر داشتند، دنیایی که علیه ما متحد شدند و قدرت من را از ما گرفتند. اما دو روزی پیش که به آنجا رفتم، میکده محبوبم را سرد و بیروح یافتم. درهایش بسته بود، دیگر آن فروغ گذشته را نداشت و از آن فضای شاد و گرمی که گوشه گوشه آن مکان بدان عادت داشت خبری نبود. به نظر می رسید، هر که در آنجا بود با من همدرد است. و همان احساس شکستن و خورد شدن که من داشتم در آنجا هم حاکم بود. نیازی نبود زیاد دنبالش بگردم. خیلی زود پیدایش کردم. روبه روی صاحب مغازه نشسته بود. از آن بازوان قوی فقط یکی برایش باقی مانده بود. دست چپش را در آخرین روزهای دفاع از برلین از دست داده بود. لوکاس با دقت به چهرم نگاه کرد. چشمانش در اثر نوشیدن زیاد سرخ شده بود. ناگهان با صدای بلند غرقه زد بلند شد و دستش را دور گردنم انداخت. لیلیان می دانستم لوکاس یکی از دستهایش را از دست داده بود اما اعتقادش به آنچه را که روزگاری به خاطرش می جنگید از دست نداده بود. به همین دلیل مطمئن بودم که می‌توانم به او اعتماد کنم. میدانستم او تنها کسی بود که می توانستم به او تکیه کنم. بعد از دریافت آن نامه نفرت انگیز، اولین کسی که به ذهنم رسید از او کمک بخواهم، لوکاس بود. شاید هم تنها کسی که در آن لحظه به او فکر می کردم. سالم یا علیل هنوز هم همان جوان خوشتیپی بود که روزی به او علاقه بودم. هرچند می دانستم قلب او متعلق به من نیست. اتفاقی که برایم افتاده بود را برایش تعریف کردم. وقتی فهمید آنطور واضح و علنی تهدید شدم، کم کم از آن حالت مستی ناشی از نوشیدن مشروب خارج شد دیگر مست به نظر نمی رسید چهرهش در هم رفت همونطور که انتظار داشتم به حرفهایم توجه نشان داد مدتی به فکر شروع رفت و بعد با صدای آهسته به من گفت درستش می کنم لیلیان تو فقط آماده باش یک یا نهایتا دو روز بهم به وقت بده راشل با تعجب به وایتسمن نگاهی انداخت با او خداحافظی کرد و از او جدا شد به سختی گام بر خافر را ترک کرد. به یاد روزی افتاد که دیبال با لباس‌های مشکی با آنها حمله کردند. ابتدا او و پدر و مادرش را به یک پایگاه نظامی در اطراف برلین بردند و از آنجا به ایستگاه قطار فرستادند. در ایستگاه مثل حیوانات به صفشان کردند. سوار های پر از جسد‌های متعفن شدند. درون قطار همه همدیگر را هل می‌دادند تا بتوانند به پنجره نزدیک شوند و کمی هوای تازه تنفس کنند. در سفرشان تا آشویتز، لحظه تنفس هوای تازه از پنجره نعمت بزرگی محسوب می‌شد. هیچ کدامشان نمی‌دانست آنها را به کجا می‌برند. توان فکر کردن هم نداشتند. بعد از اینکه از قطار پیاده شدند، زنان و مردان را از هم جدا کردند. هر کدام را در یک سمت جمع کردند. صف مردان را به خوشونت از مقابل آنها عبور دادند. چشمش به پدرش افتاد. نگاه پدرش در آن لحظه حتی یک روز از او جدا نشد. آن روز هیچ هیچکدام نمیدانستند این بار آخری است که همدیگر را بینند. و مادرش یادش آمد که چطور در میان جمعیت دستشان از هم جدا شد. مادرش به سمتی کشیده و به جایی برده شد که بدون بازگشت بود دیگر هرگز برنگشت. روزهای مرگباری را در آن مکان نفرتنگیز انگیز گذران هر روز منتظر بود تا نوبت او بشود. و به سفر بی بازگشت خود برود. در دلش وایسمن را لنت میکرد. او همه خاطراتی را که فکر میکرد میتواند برای همیشه در گوشه ای از حافظهش دفن کند دوباره زنده کرده بود. صدای وایسمان در سرش صدا کرد. ازت میخوام شهادت بدی. لیلیان کسی بود که شما رو لو داد یا حداقل بگی به او مشکوک هستی. این حرف فکرش را تا دو دست ها به پرواز درود. شبه که کریستال وقتی به خانه برمیگشت ژنرال از خانهاش بیرون آمد و او را صدا زد لیلیان چرا اینقدر دیر کردی؟ بیا تو زود باش یون اومد که چقدر از حرف او تعجب کرده بود قدمهایش سوس شد بعدن فهمید جنرال چطور با این کار او را از دست آن جوانان افراتی که مقابل منزلشان جمع شده بودند نجات داده است همانها که با دیدن تومه جدید چشمهایشان برق زده بود خاطره آن شب زخم های اردوگاه مرگ پنهان شده بود. همه یک کسانی که دوستشان داشت را در آن اردوگاه ها از دست داد. پدر و مادرش را تصور کرد که در اتاق گاز و در آن جمعیت فشارده بر خود پیچند و قبل از آنکه تسلیم مرگ شوند سعی می کنند ای برای تنفس بیابند. از این فکر بر خود لرزید. روزهای سخت آیشوز را به یاد آورد. هر روز منتظر حکم مرگ خودش بود، حک حکمی که،, حکمی که آن جلات به خاطر هویتش او را مستحق آن میدانستند چه بسیار همراهانش که هر روز به کوره های مرک فرستاده می شادند. در پاسخ به درخواست وایتسمان زمزمه کرد باید دربارهش فکر کنم همچنان در صندلیام هم فرو رفته بودم. این فکر دور سرم میچرخید که نکند لوکاس بعداش را فراموش کرده باشد یا شاید به خاطر نوشیدن زیاد در آن روز اصلا در را از یاد برده باشد. آن نامه ی لعنتی هنوز دستم بود. قلبم تون تون می زد. از وقتی آن نامه به دستم رسیده بود، اوضاع همین بود. قلبم آرام نمی گرفت. اتاق نیمه تاریک بود. در آن نور ضعیف لحظه‌ای تصور کردم یک یا دو ضربه آرام به در آپارتمان خورد. ترسیدم. فکر کردم ذهنم مرا به بازی گرفته و دوباره همان صدایی در گوشم پیچیده. که پیش از دریافت آن نامه تهدیدآمیز مرا ترسانده بود. صدای آهسته‌ای که به در میخورد همچنان ادامه داشت. چاارهای نداشتم. باید هرچه شجاعت در خودم داشتم جمع کردم. آرام و با ترس و لرز بلند شدم تا در را باز کنم. از چیزی که ممکن بود پشت در منتظرم باشد می از میان تاریکی مطلق صدای کسی که پشت در ایستاده بود را شنیدم. به زمزمه گفت: با ما بیا لیلین.